می برکف منه و براور قلقل با ناله اندلی و صوت بلبل بی نغمه اگر رواب و می خوردن می از سر شیشه می نکردی قلقل اصرار حقیقت نشود حل به ننیز به در باختن نعمت و مال تا جان نکنی و خون خوری سال از قال تو را ره ننمایند ها از جرم حزیز خاک تا اوج زحل گردم همه مشکلات گردون را حل بیرون جستم بنده هر هرمکر و حیل هر صد گشاده شد مگر بند عجل تا کیز ابد هدیث و تا کیز عذل بگذاشت من علم و عمل هنگام طرب شراب را نیست بدل هر مشکل را شراب گرداند حل.